سلام پسری، تولدت مبارک باشه امون جون نوه تموم شد، به سلامتی داری میری تو ده سال انشالله که همیشه سلامت باشی، دوست دارم، عاشقتم سلام پسر چالچالی، تولدت مبارک باشه امه خیلی دوست دارم، اینشالله که همیشه موفق باشی. یاسین پسر عزیزم، تولدت مبارک باشن انشالله یاسین عزیزم سر خوبم تولدت مبارک باشه انشاالله